پدرم داشت کمی تون می و گفت پس دیگر می ما چه کار کنیم؟ مردک موضوع رو عوض کرد و پرسید در این خانه ماشین تحریه ندارید؟ اسم ماشین تحریر را که برد رنگم پرید منتها او عبله تر از آن بود که چیزی بفهمد من از جایم بودن شدم و میخواستم خارج شوم رحظه ای پشت به او کردم پدرم جواب داد من مرد قدیمی هستم. خودم خوشنویسم و دخترم هم تا چند سال پیش تعلیم خطر گرفت. ما کاری نداریم که ماشین تحریر داشته باشیم. خونسردی پدرم مرا را حال آورد. برگشتم و تحسین آمیز به اون نگریستم و گفتم آقا جان بگذارید همه خانه را بگردند. پدرم گفت من حرفی ندارم. بگردند. مهمور آگاهی از من پرسید شما ماشین نویسی برد نیستید؟ گفتم ماشین نویسی که بلد بودن ندارد هر کس است پرسید پیش کی یاد گرفته اید گفتم یاد نگرفتم من یک انگشتی بردم بزنم پرسید کجا یک انگشتی زده اید؟ گفتم توی مدرسه ما ماشین تحریر داشتم و من آنجا زدم. پرسید توانید ماشین تحریر را به من نشان دهید؟ اون جواب دادم من چرا نشان بدهم؟ من اقلن ده سال است که در مدرسه نبودم. گفت من پرسیدم تازگی. گفتم شما کی پرسیدید تازگی؟ استنتاقی که آن روز پس دادم. اون پدرم که مرا به گستاخی و ایستادگی واداش، دلخوری که تحمل کردم تا اینکه پدرم را به ملک کوچکش تبعید کردند، همه اینها برای من تازگی داشت. من در آن روزها مزه ترس و وحشت از شهربانی را چشیدم و هر آن منتظر بودم که بیایند و مرا هم بگیرند. صدای در که آمد وحشت می کردم. از سایه خودم می ترسیدم. از چشمهای مسترب مادرم خجالت میکشیدم اما از همه این ترس و وحشت مهمتر احساس ای بود که روح و دل مرا شاد میکرد به خودم میگفتم حالا دیگر ارزش من در نظر او بالا رفته است دیگر من دختر کوچکی که دنبال ماجرا به او پیوسته باشد نیستم اما خودم شخصیتی احراض کردم. وقتی مأمور اداره سیاسی از خانه بیرون رفت پدرم دو مرتبه اتاقش برگشت و بدون اینکه چیزی بگوید روی صندلی پشتش میزش نشست و کاغذهایش را مرتب کرد. چند دقیقه هر دو نشسته بودم و فکر می کردیم. مادرم در اتاق مجاور سر جانم آزش نشسته بود. من گفتم آقا جان پدرم آرام و متفکر جواب داد بگذار کمی تنها باشم و فکر کنم. گفتم آقا جان دلم میخواست با هم تنها باشیم و با هم فکر کنیم چند لحظه منتظر شدم که جواب بدهد آن وقت روی سندریش چرخید و رو به من کرد من از جمع بلند بلن شدم و به سویش رفتم و سرش را رو روی سینم فشار دادم پدرم دست انداخت گردن و من و گونه ها و پیشانی مرا بوسید و گریه کرد گفتم آقا جان این دردسرها سرها رو من برای شما فراهم میکنم گفت نجانم اینطور فکر نکن من فخر می کنم که دختری مثل تو دارم گفتم آخر نمیشود که این همه ناملایمات را تحمل کرد ببینید با شما که اینجور رفتار میکنند با مردم دیگر چه میکنند گفت تو خیلی به مردم امیدوار هستی گفتم راستش را بخواهید من هم خیلی امیدواری ندارم اما این کارها تنها چیزی است که مرا در زندگی نگه می‌دارد. گفت این دیگر بدتر که این نامه ها را مینویسد. گفتم این راز را از من نپرسید. من حق ندارم بگویم. گفت خودت میدانی من همش در فکر تو هستم. تو لازم نیست به حال من قصه بخوری. من چند سباهی بیشتر زنده نیستم. اما دلم میخواست تو بدبخت نشوی گفتم من از این بدبختتر نمیتوانم بشوم ظلفهای مرا ناس کرد و گفت چرا دختر جان مگر چه شده گفتم نپرسید من خودم هم نمیدانم چه هم است آن وقت نصیحتم کرد و گفت نمیگویی نگو تو امثال تو نمیتوانید این دستگاه را به هم بزنید مگر این دستگاه به روی پای خودش ایستاده که شما بتوانید واشگونش کنید آنهایی که نگهش میدارند از جای موشکی بازی‌های شما حراسی ندارند این دیو احتیاج به قربانی‌های زیاد دارد اما من کسی را مرد میدان نمی‌بینم می‌ترسم باز اینکه او را ضعیف‌تر کنید از خونخاری پروارتر بشود و بی‌پروا به شما بتازد شنیدم که در فرنگستان چند تا از محسدین تلاش میکنند. شان را هم دیدم. اگر خیال میکنی راهی که میروی صحیح هست و نمیتوانی راه دیگری بروی، برو، خدا همراهت. حتما سررشته کار تو هم آنجا پی است. تمام دارایی من در اختیار توست. در همین هنگام تلفن صدا کرد. از شهبانی میخواستند با پدرم صحبت کنند. وجودان شهربانی از پدرم خواهش کرد که سر شب ساعت 6 تا هفت سری به دفتر رئیس کل بزند وقتی از پیش رئیس شهربانی برگش برخلاف تصور من خیلی عادی و آرام بود به هیچ وجه آثار استرابی از حرکات و سخنانش دیده نمیشد. سر شب مثل معمول با مادرم و من در اتاق کارش روی زمین نشسته بود پیژامه‌اش را بتن کرد و عبایش را به کولش انداخته بود سینی مشروبش جلوش بود و چند قوغسی، انار و مقتاری، نان و سبزی و تروچو و کباب سیخی به جای به کار میرفت. از همه چیز صحبت به میان آورد. جز از آن چه در دل داشت و من دل با پس شنیدنش بودم. آخر شب تصور کردم که حادثه به کلی تمام شده است. روز بعد به مادرم گفت و من از مادرم شنیدم که پدرم خیال دارد به ساله در ملکی که نزدیکی قذبین داشتیم مسافرت همان روز مرا و مادرم را به محسر برد و آنجا قسمت عمده داراییاش را به من بخشید سهم مادرم را هم معین کرد قرار بر این شد که تا زمان حیات پدرم و بعدا پس از مرگ او اداره ام املاک و اموال به عهده من باشد استاد از داستان تبعید پدرم تا دو هفته خبر نداشت اما اطلاع حاصل کرده بود که خانه ما را تفتیش کردند و از همین جهت تا دو سه هفته به هیچ قیمتی حاضر نشد که او را ملاقات کنم و فقط گاه گاهی آقا رجب دستورهای او را برای من می‌آورد تا آن شبی که سرنوشت شوم من تعیین شد